خانم غیبی پس انداز کن سلام امیدوارم که حالت خوب باشه از معدود آدم هایی که دیدم عاشق کارشونن و شاید پول رو به جایگاه شغلیی که دارن ترجیح نمیدن این چند سالی که در خدمت شما بودیم لذت بردیم پله پله رشد شما رو دیدم و زحمات تو ازیتهایی که کشیدین رو لمس کردم از شما ممنونم بابت این چند سال امیدوارم که در ادامه مسیر هم بتونیم در خدمت شما باشیم. و لذت ببریم از اینکه با شما همکاریم در نهایت ازت تشکر میکنم بابت این چند سال و امیدوارم که سرحال و غبراغ باشی و توی این مسیر به نوینالماس کمک کنیم